بسم الله الرحمن الرحیم بنام خداوند بخشندگی مهربان. الحمد لله اللذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. حمد بسیاریش مخصوص خداوندی که تمام آنچه در آسمانها و زمین است اصْفَاوَ نَ أُ بِحَمْدِ سَقَاوَ بَرَايَ أُس دَسْرَاجِ آخِرَتْ بَأُ دَنَا وَآكَار يَعْلَمُ مَا يُعْلَى فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَآءِ وَمَا أَنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يُعْرَضُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ آنچه را در زمین فرو می رود و آنچه از آن برمیاکیت می داند و همچنین آنچه از آسمان نوطل می شود و آنچه آن بالا می رود و او مهدان و آمزنده و قال الذین لا يعزو عنه نتقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أفضر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مهين کاثران گفتن چه آمد هرگز به سراغ ما نخواهد آمد بگو آوری دفر بردارم سلقان که به سراغ همه شما خواهد آمد خداوندی که از غیب آغاز و به اندازه سنگینی زربهی در آسمان ها زمین از علم او دود نخواهد مند و نکوشکتر از آن و نبزرگتر مگر این که در کتاب مبین ثبت لی اجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولائک لهم مغزرت و رزتون تا را که ایمان آبردند و عمل صالح انجام دادند تا داشتهد و برای آنها آمرزش و رزق فرعرزشی خصانی که ساید در سکری به آجات ما داشتند و گمان کردند میتبانند از حوضه قدرت ما بگریزند عذاب بد و در ناکی خواهم داشت و یرالذین اوت العلم الذی انزل آنها که در رای علم آنچه از سوی بر تناظر شده حق میبانند و هدایت کننده برای خداوند عظیم و حمین وقال الَّذِينَ كَفَرُواً لَهُلُّكُمْ عَلَى وَجُدِينَ يُنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقُتُمْ سافران گفتند آیا مردی را به شما نشان دهیم که خبر میدهد هنگامی که سخت از هم متلاشی شدید باری دیگر آفرینش شتاطی خواهید یا افتوان الله کذبا انبیه جنه بل لا يؤمنون بالآخرة في والضلال البعید آیا او بر خدا دروغ بسته یا بناب ایتونون گرفتاره؟ چون این نیست بلکه آنها که به ایمان نمیآورند در عذاب و گمراهی دوری هستند بین و من آیا با آنچه پیشرو و پشت سر آنان از آسمان و زمین قرار دارد نگاه نکردند اگر ما بخواهیم آنها را در زمین رومی میبریم یا قطعات سنگ های از آسمان را بر آنها ترون ریزی. در این نشانه دوشنی بر قدرت خداست برای هر بنده توبکات و لقد آتینا داود من قضلا یا جبال اوویبی معه و الطیب و له الحدید ما بدوا و از تلخاها نئمت بزرگ بخشیدی گفته ای کوهها و ای پرندگان و او هم آواز شدید و آهنگ را برای او نارکتی. آنهملت و قدیر استرد و با دستور دادیم جریح‌هاوی کامل و خراش داشت، و با الحکاوه را به اندک و با متناسب کن و عمل پذیر و چا که من به آنچه انجام می‌دهی دینا هستم. ولِتُلِيمَ لَرِيحَوْدُها شهر و من الجن من یعمل بین یدین با اذن ربه و من یزغ منهم عن امرنا نزقه من عذاب السعید برا با برای سلیمان بابرا متخططیم یک مهرمی پیموید و سطاقهان مسیری یک مهرم با ششمه مثل مذابرا برای ببروکی از جن پیش او با اسم پربادکار کار می کردن برکدام از آنها از فرمان سر ما سرپیچی چی می او را از عذاب آتش سوزان می یامرون یعمرون لهم ما یشاغ من محاریب و تماثیل وجتان کل و آنها هرچی سلیمان میخواست برایش درست می کردن معبتها، تمسالها، دروف بزرگ خزا، هم مانند حوضها، با دیگ هاوی ثابت ای آل تابود، شکر این همه نعمتها جا آبرید اما اده کمی از بندکان محنان فَلَمَّا قُضِيَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ مَا دَنَّ لَهُم عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا ذَبَتِ الْأَرْضُ تَأْكُلُ مَنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا قَرَتْ بَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا في الْعَذَابِ با این همه جلال و شکوه سلیمان هنگامی که مرد را بر او مقرر داشتیم کسی آنها را از مکبی آگاه نتا مگر جنبنده زمین که اصال او را میخور هنگامی که بر زمین افتاد جنیان فهمیدند که اگر از غیب آگاه بودند در اصاب خواه باقی باکی نمیماندند لقد کان فی برای قوم سبا در محل تپن نشانه از قدرت الهی بود به باغ عظیم و گسترده از راست و چپ با میوه ها و با آنها گفتیم از روزی پروردگارشان بخورید و شکر او بجاء أبري شهريف فاق وحكيذ كاوي أمرت بهم محبوب فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم جنتين وبدلناهم بجنتين جن و من قليل اما آنها ها از خدا رویگردان شدند و ماسیل ویرانگر را بر آن ها و دوباغ پر برکت شان را به دوباغ بیارزش با میوههای تاغ و درختان شوره گز و اندک درخت صدر مبدل ساختیم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 را خاطر کفرشان به آنها جزا دادیم و او جز کفران کنند را به چونین مجازاتی که پر می میان آنها و سرزمین هایی که برکت داده بودیم شعبها و آبادی های آشکار قرار دادیم و با فاصله های متناسب و مقرر داشتیم و به آنها گفتیم شبها و روزها در این آبادی ها در امنیف کامل مسافرت کنیم وقالوا ربنا باعد بين اثارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومنذقناهم كلما ازدق في ذلك لآيات لكل یان سفرهای ما دوری آنها به ستم کردند و ما آنها را اخبار و داستانی برای دیگران قرار دادیم و جمعیتشان را متلاشی ساختیم در این ماجرا آیاد و نشان های عبرتی برای هر سابر شافت شدار. ولقد قصد عليهم إبليس ظنّه إلا فريقا من المؤمنين أرى بيقين إبليس جماعة خذلوا درباري أمها مع كتيا كهمجي أسكو في ذيكاردان جسقروه أنتك وما كان من إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيد وصل صبر أنها ندعش بعد فتأوزا دي شيطان در بسطة هالجش إن بود كمؤمنا بآخرة الآن هالجشاكستان شناو تشب بأَحَدَّكَ بأفر أَوْرِثُهُ هَوْفِهِ بَنِكَهْبَوْنِ هَمْشِيَزَ قُلِ دَعُوْنَ الَّذِينَ جَعَلْتُم مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ قَالَ <سؤال> ذَرْرَةً فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ إِهْمَانٌ شِرْفٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ ضَهِيرٌ بگو کسانی را که غیرت خدا معبود خود میپندارید آنها و اندازه ذره در آسمان ها و زمین مالک نیستند و نه در خلقت با مالکیت آنها شریک کردیم و ما او در آخرینش بودند ولا تنفع الشبع عنده الا لمن اذن له حتى اذا موسیقی هیش شفاعت نزده او جز برای کسانی که اجازه داده سودی ندارد دران روز همه در استرابند تا زمانی که استراب از دلحوکی انها ساگیر کردند و فرمان اصناکه او صادر شود در این هنگام مجرمان و شفیان میگوگند فربارتگارتان چه دستوری دادند میگوگند حق را بیان کرد و اجازه شفاعت در مستحقان داد و اوس بلند مقام و بزرگ محتبه قل من من السماوات والدر قل الله وَإِنَّا أَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدَنْ اَوْ فِي بگو چکت شما راز آسمان ها و زمین روزی می دهد بگو الله و ما یا شما طریق هدایت یا در تلالت آشکار بگو شما گناهی که ما کرده این سؤال نخواهید شد همان گونه که ما در برابر اعمال شما مسئول نیستیم قل يَجْمَعُ بیننا رَبُّنَاتُم بیننا بالحق و هوا البتاق العلیم ما همه ی ما را جمع می سپس در میان ما به حق داوری می نمو و او داور آقا قل اروني الذين الحقت به این شرکا بل هو الله الحسین بگو کسانی را که با عنوان شریک با او یک جا ساخت اید و من نشان دهید هرگز چنین نیست او شریک و شبیه ندارد بلکه او خدا بند عزیز با حکیما وما اوزلناک ما تو را جز برای همه مردم نترستازین تا بشارت بهی و بترسانی ولی اکثر مردم نمی داند می گویند اگر راست می گویید این بعدی رستاخی که خواهد بود قل لكم ميعاد يوم لا تستأذرون عنه ساعته ولا تستقضون بقوقعتي شما روزي خواهد بود كن ساعتيه آن تأخير ميكنيد ونبر آن بيشي خواهد كر. وقال الذين كفروا لنؤمن لن بهذا القرآن ولا بالذي بين يدي ولو ترى إذ مَوْثِيهُمْ لَعَنْدُوا رَبَّهُمْ يَوْمَئِذٍ يرجع بعضهم إلى بعض إِلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَن تُمَنَّ سافران گفتند ما هرگز به این قرآن و کتب دیگر که قبل آن بوده ایمان نخواهیم آورد اگر ببینی هنگامی که این ستمگران در پیشگاه پربردارشان برای حساب و جذابات شده اند، اثبت آنها تعجب می کنید. در حالی که هر کدام گناه خود را به گردن دیگر میاندازد اندازد، با به مستقبلان اگر شما نبودید، ما مؤمن بودیم. قال الذين استكبروا للذين الذين أنحن عن الهدى بعد جاءكم بل كنتم مجرمين با مستافان فاسخ ما شما را بعد آن که به سراغ شما آمد و آن را به خوبی دریافتید، بلکه شما خود مجرم بودید. بل تأمرون این ندامت لما رأو العذاب و جعلن اعماق هل الا ما كانوا نیگو جان بس بس هاو شما در شب بروز موضع کمراخی و گامی که به ما دستور می دادید، که به خداوند کافر شویم و شریک هایی برای اوقراد دهیم، آنها هنگامی که آب را می بینند، ندامت خود را ختمان می کنند، ما بادا بیشتر رسوا شوند و ما غل و در گردن کافران می نهیم، آیا جز آنچه عمل می به و آنها جزا داده می شود؟ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مسرفوها ما در هیچ شهر زیاری طامبر انظار فرنده نفر استفادین مگر اینکه مطرفین آنها یعنی همانها که مست ناز بر نعمت بودند گفتند ما آنچه شما فرسوده شده اید کافر هستید نحن و گفتند، اموال و با, با ازداد ما از همه بیشتر است، و ما هرگز مجازات نخواهیم شد. قل إن ربي يبسوط الرزق لمن يشاء ويقدو ولكن أكثر الناس لا يعلم بگو بردار من روزی را برای هرکس بخواهد و سی یا تند می کند. بل أكثرهم توم نميتونا وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم من اموال و فرزندان شما هرگز شما را نزد ما مقرب نمی سازن. جز کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند که برای آنها پاداش مضاعت در برابر اعمالی که انجام دادند و آنها در غرفه در نهایت امنیت خواهند بود و و آنها که برای انکار و ابتاد آجات موطناش می کنند و می پندارند از چنگار قدرت موطرار خواهند کرد در عذاب الهی احضار می شبند قل این ربی بسطل لطل من یشاؤ من عباده و یکدر له و ما ووا بگو فر روزی را برای ی حرکت بخواهد سکی دهد و برای ی حرکت بخواهد سنگ و محدود میثد و هر چیزی را در راک او انفاق کنید جای آن را پر و او بهترین روزی دهندگان است ما يقول بیاور روزی را که خداوند همه آنها را محشور میکند سپس به فرشتگان میگوید آجا اینها شما را فرستش میکردند قالوا سبحانك انت ولينا من بلکه نوی عبدون الجن، اترهم مؤمنون فرشتگان می گوگند، پاکی تراست تو کار ساز ما هستی، نه ایشان، بلکه ایشان جنها را پرستش می کردند و بیشتر ایشان به آنها ایمان داشتند فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعُونَ وَلَا بَرْضًا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ضَلَهُونَ وَعَبَابَ الْنَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ امروز هیچ اکر شما نزبرد و دیگر مالک سود و زیانی نیست و با سالمان میگوهیم بچشید عذاب آل را که تفزید میکردیم وَإِذَا تُتَّلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِنَاتٍ قَالُوا مَا بَعْدَ إلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّهُمْ قَالُوا مَا بَعْدَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يصدكم گامی آجات روشنگر ما بر آنها خوانده شود، میگویند او فقط مردی که میخواهد شما را از آنچه پدرالتان فرستش میکردند باز دارد و میگویند این جز دروغ بزرگی که به خدا بسته شده چیز دیگری نیست و کافران انگامی که حق و سراغشان آمد گفتند این فقط یک سده آشکار است ماتینا من کتب یل رسولها من نزیر ما قبلا چیزی از کتب آسمانی را به آنها نداده ایم که آن را بخوانند و قبل از تو هیچ پانبری نیز برای آنها نفرستادیم وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغَهُم مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا غَيْرَ مَعِينٍ فَكَذَّبُوا رُسُلَ فَسَوَّىٰ كُلَّ نَكِيرٍ کسانی که پیش از آنها بودند نیز آجات علاقی را تکذیب کردند در حالی که اینها به یک ده از قدرت و نیروی آنها نمیرسند. آره, آره آنها رسولان مرا تکذیب کردند و ببین مجازات من نسبت به آنها چگونه بود قل انما ففرواما بصاحبم من جنه ان هو الا نزیرمبگو تنها شما را به یک چیز اندرد میدهم و این اینکه دو دو نفر یا یک یک نفر برای خدا قیام كنید خود را کار گیرید این دوست و هم نشین شما محمد هیچ کونه جنون ندارد او فقط دیل بهنده شما در برابر عذاب شدید ایلافین قل ما سألتكم من اجر فهو لکن ان اجر یا الا على الله و هو كل شيء شئ شئید بگو اهر اجر و پاداش از شما خواستم برای خود شما اجر من تنها بر خداوند است و او گباه بر هر چیزی بگو پروردگار من حق را بر دل پیامبران خود مییفکند که او علام الغیوب اسد قل جاء الحق وما يرد الباطل وما حق آمد و باطل نمی تواند آغاز چیز باشد و نفس دید قل آن قل اضل على و این اهتدهیت فبی ما إِنَّهُ رفتی اینه بگو اگر من گمراه شبم اصنافجه خود گمراه می شبم و اگر هدایت یابم با بکلی آنچه پر و من وقتی می کند هداویت یابم بی گمان او شنبا و ولو ترا اذ فزوم فلا فوت و اخذ ممتن من مكان قريب. اگر ببینی هنگامی که فریادشان بلند می شابد، اما نمی بگریزند و آنها را از مکان نزدیک نگیرند. و قارم آمن نادهی و امنا له مستنعونه من مکان بعید بعد <تصفيق> درانحان میگوگم ایمان آبادهید ولی چگونه میتبانند از فاصله دور به آن دستسی پیدا کنند و قد تفرو قبل و یقود مکان آنها پیش که در نهایت آزادی بودند و آن کافر شدند و نسبت های نارما با آن می و از مکان تو دستی به جهان خیل پرتاب می شدند وحیر بينهم و بین ما یشتهون کما قویل دی اشیاعی من قبل انهم کادو في شک مریب سران جمعیان آنها با انچ مورد علاقیشن بود جدایی افکرد شد همان گونت بفیردان آنها از قابل عمل چرا که آنها در شد و سردید